های فولکلور ارمنستان نوشته گئورگیس آغاسی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای افسانه‌ای صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده فرید خام این داستان مالک و کارگر در روزگاران گذشته دو برادر به سر می بردن که بیش از حد فقیر بودند روزی برادر بزرگتر مثمم شد که کاری به عنوان پیشخدمت پیدا کنه تا بتونه روزی خودش رو بگذرونه به همین جهت نزد مرد ثروتمندی رفت و گفت که قصد داره پیشخدمت بشه اما در جواب شرط بسیار عجیبی پیشنهاد شد بدین معنی که گفت من احتیاج به پیش خدمت دارم و شما رو نیز استخدام میکنم اما این موضوع شرط داره و اون اینه که از حالا تا اولین صدای چهچهه چه بلبلای بهاری به هر عنوانی عصبانی بشی باید یک هزار سکه طلا به من بدی و در این حال چنانچه تا آن موقع من خشمگین شدم همین مبلغ رو به تو خواهم پرداخت مرد جوان گفت شرط شما معقوله اما من مرد فقیری هستم و یک هزار سکه ندارم پس چطور میتونم دین شما رو در صورت باختن بپردازم؟ ارباب جواب داد اشکالی نداره در اون صورت میتونی ده سال به طور رایگان به من خدمت کنی مرد جوان بدون از این پیشنهاد دوچار وحشت شد ولی سرانجام تصمیم گرفت که به هیچ عنوانی عصبانی و خشمگیر نشه بلکه سعی کنه که شاید مرد ثروتمند رو عصبانی کنه پس تصمیم به عمل گرفت و وارد خدمت اون مرد شد روز بعد ارباب مستخدم تازه خودش رو بیدار کرد و اون رو برای درو کردن گندم فرستاد و گفت برو ها رو دروغ کن باید تا شب کار خودت رو تموم کنی و پیش از فرارسیدن شب هم نباید به خونه برگردی جوون بخت برگشته تمام روز رو در مزرعه کار کرد و شب هنگام به خونه برگشت ولی اربابش گفت چرا برگشتی زیرا غروب شد و من برای استراحت به خونه اومدم خیر خیر این چیزی نیست که من به تو گفتم من گفتم که باید تا تاریخ شدن هوا درو کنی و میدونم که خورشید غروب کرده اما ماه در آسمون میدرخشه و این روشنایی برای ادامه کار کفایت میکنه پیشخدمت به حیرت گفت پس من باید تمام شب کار کنم بعده نکنه اصبانی هستی ناخیر، من حسابانی نیستم، فقط اظهار خستگی کردم و قصد داشتم کم استراحت کنم. جوون وقت برگشته دوباره به مزرعه بازگشت و به کار پرداخت و اونقدر به کار خودش ادامه داد تا اون که ماه جای خودش رو به خورشید داد و کارگر بیچاره از فرد خستگی نقش بر زمین شد. در همین موقع ارباب سر رسید و شروع کرد به سرزنش کردن و گفت: معلوم میشه که کارگر تنبل و بیلیاقتی هستی جوون گفت این شما و این مزرعه و منم دیگه نمیخوام کار کنم و مزد خودمم هم نمیخوام سپس شروع کرد به فریاد زدن و ناسزا گفتن ارباب گفت که اینطور پس تو عصبانی شدی باید طبق قرارداد جریمه خودت رو بپردازی من نمیخوام تو خلاف میل خودت به من خدمت کنی ارباب سپس ادامه داد که اون جوان یا باید هزار سکه رو بپردازه یا اینکه ده سال به او خدمت کنه پیش خدمت بلا تکلیف مونده و نمیدونست که چی کار باید بکنه زیرا نه پول داشت نه قادر به ادامه کار به مدت ده سال بود پس از قدری تفکر تأهدی کتبی بر باب داد و برای یک روز مرخصی گرفت و به خونه برگشت برادر کوچکتر گفت خب کار تو چطور بود؟ آیا درآمد خوبی داشتی یا نه؟ برادر بزرگ تمام غذایا رو شرح داد و برادر کوچکش جواب داد نگران نباش تو همینجا بمون از خونه مراقبت کن من خودم میرم تا شاید ترتیبی برای کارا بدم برادر جوان سپس نزد مرد ثروتمند رفت و گفت که قصد داره کارگری کنه ارباب پرتمع همون شرایط رو پیشنهاد کرد اما مرد جوان گفت خیر این کفایت نمیکنه چنونچه شما از حالا تا اولین چهچههی بلبل عصبانی شدید باید دو هزار سکه به من بدید و اگر من عصبانی شدم همون مبلغ و یا 20 سال خدمت رو به عنوان جریمه قبول میکنن. مرد ثروتمند با خوشحالی گفت: بسیار خوب. پس از قبول شرایط، مرد جوون وارد خدمت ارباب شد. صبح روز بعد خورشید در آسمان طلوع کرد، اما مرد جوون از جای خودش تکون نخورد. ارباب برای گردش از خونه خارج شده بود و وقتی که برگشت مرد جوون همچنان دراز کشیده بود. پس فریاد زد جوون زهر شده و آیا تو قصد نداری کاری بکنی؟ پیش خدمت سرشو بلند کرد و گفت چطور شده آیا شما عصبانی هستین؟ ارباب با نگرانی گفت خیر خیر من عصبانی نیستم فقط داشتم فکر میکردم که باید امروز قسمتی از مزرعه رو درو کنیم خوب این فرق میکنه ولی چه عجلهای داریم سرانجام پیش خدمت از جا برخاست و با ملایمت شروع به پوشیدن لباس کرد پس از مدتی عرباب برگشت و متوجه شد که اون جوون هنوزم مشغول پوشیدن لباسه و گفت عجله کن چقدر لباس می جوان جوونک گفت امیدوارم که از دست من اصابانی نشده باشید او خیر، فقط عقیده دارم که قدری دیر شده خب این موضوع دیگه ایه ما باید طبق قرارداد عمل کنیم مگه نه پس از اونکه پیش خدمت از پوشیدن لباس کار فارغ شد، به اتفاق به مزرعه رفتن اما روز به نیمه رسیده و وقت صرف ناهار بود. جوون کارگر گفت: حالا دیگه وقت درو کردن نیست و شما اگر به اطراف نگاه کنید خواهید دید که همه کارگرا مشغول صرف ناهار هستند. ما هم باید غذای خودمون رو بخوریم و بعد به کار خودمون ادامه بدیم. هر دو بر زمین نشست و مشغول صرف غذا شدند. بعد جوون کارگر گفت کار کردن بعد از صرف غذا دور از احتیاط و بهداشته و شخص باید اندکی استراحت کنه این رو که گفت بر روی ها دراز کشید و تا شب به خواب فرو رفت ارباب فریاد کشید برخیز جوون خورشید غروب کرده همه مزارع خودشون رو درو کرده و به خونه برمیگردند اما ما دست به سی و سفید نزدیم. لرنت به اون کسی که تو رو به اینجا فرستاد که این چنین و من شدی جوون سر خودش رو بلند کرد و گفت از دست من عصبانی هستید؟ او نه نه ولی آخه هوا تاریک شده و باید به خونه برگردیم این موضوع دیگریست برویم شما خودتون از قرارداد ما آگاه هستید و خدا به بازنده رحم کنه هر دو به خونه بازگشتن ادهی مهمان به خونه ارباب وارد شده بودن و ارباب نوکر خود را فرستاد تا گوسفندی رو سر ببر رو کباب کنه مرد جوون پرسید سر کدوم گوسفند رو ببرم قربان هر کدوم که دیدی مرد جوون خارج شد دیدی نگذاشت که به ارباب خبر دادند که نوکر تازش تمام بر و گوسفنداش رو زب کرده مرد غنی از جاب برخواست و بیرون رفت موضوع حقیقت داشت و ارباب پرخاشکنان گفت ای ابله چرا این کارو کردی خونه خراب تو تمام برای منو کشتی بیچاره شدم قربان شما خودتون فرمودید تا هر گوسفند رو دیدم سر ببرم و من هم همه رو دیدم و سر بریدم و فکر نمیکنم که خلاف کرده باشم اما به نظر میرسه که شما قدری از کوره در رفته باشی نه نه من اسبابانی نیستم فقط به خاطر کشته شدن گوسفندهایم شیون میکنم کار خوبی میکنید این نشونه خوش شماست و من از خدمت کردن به اربابی نزیر جنابالی بسیار خورسندم ارباب مدت ها برای روندن اون جوون فکر کرد قرار داد اونا تا شنیدن اولین صدای چهچهه بلبل همچنون قوت خودش باقی بود یعنی تا فرارسیدن بهار، سه ماه فرصت داشتند و زمستون نیز تازه شروع شده بود عربا پس از مدتها تفکر راه چاره یافت و همسر خودش رو به جنگل اون حوالی برد و او رو روی شاخه درختی قرار داد و به اون گفت تا صدای بلبل رو تقلید کنه بعد به خونه برگشت و به نوکر خود گفت بیا تا برای شکار به جنگل برویم به محض اینکه وارد جنگل شدن همسر ارباب از روی درخت شروع به چه, چه زدن کرد ارباب فریاد زد آه عجب شانسی آوردی بلبل آواز سرداد و مهلت تو به پایان میرسه مرد جوون پی به نقشه ارباب برد و گفت آخر چه کسی شنیده که بلبل وسط زمستون چهچهه بزنه این علامت شومیه و من باید این بلبل بی وقت رو به قتل برسونم تفنگ خودش رو بلند کرد و به طرف درخت جایی که همسر ارباب نشسته بود نشونه رفت ارباب فریادی زد و بر سر خودش کوبید و گفت آتیش نکن دست به دومن تاتش نکن لعنت به اون روزی که چشم من به تو افتاد آخه این چه بدبختی بود که به من نازل شد جوانک گفت عصبانی شدی در باب عزیز بله دوست گرامی من عصبانی شده و شرط رو باخدم بگذار جریمه رو پرداخت کنم و از شر تو ابلیس راحت شم من خودم این شرایط رو قائل شده و باید جزاش رو هم پس بدم حالا میفهمم که چرا میگن چاهمکن بهره کسی، اول خود دوم کسی به این ترتیب ارباب تما سر عقل اومد و برادر جوون نیز قرار داده برادر بزرگ خودشو پاره کرده و در حالی که یک هزار سکه در جیب داشت به خونه برگشت به امید اینکه از شنیدن این داستان لذت برده باشید تا داستانی دیگر از سری داستانهای افثانهای فولکلور هرمنستان روز روزگارتون به خیر و به کام